مصنوی معنوی مولوی برنامه یک یکم سائل از مرغی که بر سر ربز شهر نشسته باشد، سر او فاضل تر است و عزیز تر و شریف تر و مکرم تر یادم او و جواب دادن واعظ سائل را به قدر فهم او. واعز را گفت روز سائل کی تو را سنیتر قائله یک سوال استم بگو ای زول و باب اندر این مجلس سوالم را جواب بر سر بارو یکی مرغ نشست از سر و از دم کدامینش بهست گفت اگر رویش به شهر و دم بده روی او از دم او میدان که به ورسوی شهر است دم رویش بده خاک آن دم باش و از رویش بجی مورگ با پر می پرد تا آشیان. پر مردم همت است ای مردمان. عاشق کالوده شد در خیر و شر. خیر و شر منگر تو در همت نگر. باز اگر باشد سپید و بینظیر چون که سایدش موش باشد شد حقیر ور بود جوغ و مایل او باشا او سر باز است من در کلاه آدمی بر قد یک تشت خمیر برفزود زود از آسمان و از اسیر هیچ کرمنا ناشنید این آسمان که شنید این آدمی پرغمان بر زمین و چرخ عرضه کرد کس خوبی و عقل و عبارات و حوص جلوه کردی هیچ تو بر آسمان خوبی روی و اصابت در گمان پیش صورت های حمام ای ولد کردی هیچ سیم اندام خود بگذری زن نقش‌های های همچهور جلوه آری با عجوز نیمکور در عجوزه چیست که ایشان را نبود که ترا زن نقش ها با خود را بود تو نگویی، من بگویم در بیان اقل و حس و درک و تدبیر است و جان در عجوزه جان آمیزش کنست است صورت گرمابه ها روح نیست صورت گرمابه گرجن بش کند در زمان او از عجوزت برکند جان چه باشد با خبر از خیر و شر شاد با احسان و گریان از ضرر چون سر و ماهیت جان مخبر است هر که او آگاهتر تر با جان تر است روح را تأثیر آگاهی بود هر که را این بیش اللهی بود چون خبرها هست بیرون زین نهاد باشد این جانها آن میدان جماد جان اول مظهر درگاه شد جان جان خود مظهر الله شد آن ملایک جمله عقل و جان بودند جان نو آمد که جسم آن بودند از سعادت چون بران جان برزدند همچوتن آن روح را خادم شدند آن بلیس از جان از آن سر برده بود، یک نشد با جان که عضو مرده بود. چون نبودش آن، فدای آن نشد. دست بشکسته، مطیع جان نشد. جان نشد ناقص، گران عضو و شکست، کان با دست اوست تاند کرد هست. سر دیگر هست. کو گوش دگر. توتی کو مستعد آن شکر. توتیان خاص را قندست ژرف توتیان آم از آن خور، بستت عرف که چشد در صورت زانزکات معنی است آن نه فعولون فائلات از خر ایسا دریغش نیست قند لیک خر آمد به خلقت که پسند خاند خر را گرتارب انگیختی پیش خر قنتار شکر ریختی معنی نختم علا افواه این شناس این است راه را مهم تازه راه خاتم پیغمبران بو که برخیزد زلاب ختم گران ختمهای کنبیاب بگذاشتند آن بدین احمدی برداشتند. قفل های ناگشاده مانده بود. از کفه فتحنا برگشود او. شفیع است این جهان و آن جهان این جهان زیدین و آنجا زیجنان این جهان گوید که تو رحشان نما وان جهان گوید که تو محشان نما پیشش اندر ظهور و در کمون اهد قومی انهم لا یعلمون بازگشته از دم او هر دو باب در دو عالم دعوت او مستجاب بهره این خاتم شده است او که بجود مثل او نبود او نه خواهند بود چونکه در صنعت برد استاد دست نه تو گویی ختم صنعت بر تو است در گشاد ختم تو خاتمی در جهان روح بخشان خاتمی هست شارات محمد المراد کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد صد هزاران آفرین بر جان او بر قدوم و دور فرزندان او آن خلیف زادگان مقبلش زادند از عنصر جان و دلش گرز بغداد و هری یا از ریند مزاج آب و گل نسل ویند شاخ گل هر جا که روید هم گل است خم مل هر جا که جوشد هم مل است گرز مغرب برزند خورشید سر عین خورشید است نه چیز دگر ای چینان را از این دم کور دار همبسط تاری خود ای کردگار گفت حق چشم خفاش بدخسال بستم من زافتاب مثال از نظرهای خفاش کم مکاست انجمه آن شمس نیز اندر خفاست نکوهیدن هیدان پوسیده را که مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدقند و راهزن صد هزار ابله چونان که راهزن آن مخنس شده بودند گوسفندان و نمیارست است گذشتند و پرسیدن مخنس از چوپان که این گوسفندان تو مرا عجب گزند گفت اگر مردی و در تو رگ مردی هست، همه فدای تو اند و اگر مخنسی، هر یکی تو را اجده هاست. مخنس دیگر هست که چون گوسفندان را بیند، در حال از راه بازگردد. نیارد پرسیدن، ترست که اگر بپرسم، گوسفندان در من افتند و مرا بگزند. ای زیاء الحق حسام الدین بیا ای ثقال روح و سلطان الهدا مصنوی را مسرح مشرو ده صورت امثال او را رو ده تا حروفش جمله عقل و جان شوند سوی خلدستان جان پران شوند هم به سعی تو ز ارواه آمدند سوی دام حرف و مستحقن شدند باد عمرت در جهان همچون خزر جان فضا و دستگیر و مستمر چون خزر و ولیاسمانی در جهان تا زمین گردد ز لطفت آسمان گفتمی از لطف تو جزوی ز سد گر نبودی تمتراق چشم بد لیک از چشم بد زهرا به دم زخمهای روح فرسا خوردم. جز بر رمز ذکر حال دیگران شرح حالت می نیارم در بیان این بهانه هم ز دستان دلیست که از او پاهای دل اندر گلیست صد دل و جان عاشق سانع شده، چشم بد یا گوش بد مانع شده. خود یکی بو طالب، آن ام رسول، می نمودش شنعه اربان محول. که چه دام عرب که طفل خود، او بگردانید دین معتمد. گفتش، ای ام یک شهادت تو بگو تا کنم با حق خصومت بهر تو. گفت، لیکن فاش گردد از سما کلو سرن، جا وزل اسنین شاه من بمانم در زبان این عرب پیش ایشان خار گردم زین سبب لیک گر بودش لطف ما سبق کی بودی این بدلی با جذب حق القیاس، ای تو غیاس المستقیس، زین دو شاخه اختیارات خبیس. من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان. من که باشم چرخ با سد کار و بار زین کمین بگریخت یعنی اختیار کی خداوند کریم و باردبار ده امانم زین دو شاخه اختیار جذب یک راه صراط المستقیم به ز دو راه تردد ای کریم زینداره گرچه همه مقصد توی لیک خود جان کندن آمد این دوی زینداره گرچه بجز تو عظم نیست لیک هرگز رازم همچون بازم نیست در نوبی بشنو بیانش از خدا آیت اشفق نه این نه این تردد هست در دل چون وغا کین بود به یا که آن حال مرا. در تردد میزند بر همدگر خوف و امید بهی در کرفر مناجات و پناه جستن به حق از فتنه اختیار و از فتنه اسباب اختیار که سماوات و ارزین از اختیار و از اسباب اختیار شکوهیدند و ترسیدند و خلقت آدمی مولع افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خیش چنانکه بیمار باشد خود را اختیار کم بیند سهت خواهد که سبب اختیارش بیفزاید و منصب خواهد تا اختیارش بیفزاید و محبت قهر حق در امم ماضیه فرت اختیار و اسباب اختیار بوده است هرگز فرعون بینوا کس ندیده است اولم این جز رو مد از تو رسید ورنه ساکن بود این بحر ای مجید هم از آنجا که این دادیم بی تردید کن مرا هم از کرم ابتلایم می کنی آه الغیاس ای زکور از ابتلایت چون اناس تا بکی این ابتلا یارب مکن مذهب ام بخشو ده مذهب مکن اشتره ام و پشتریش زختیار همچو پالان شکل خیش این کجاوه گه شود این سو گران. آن کجابه گه شود آن سو کشان. بفگن از من حمل ناهمبار را تا ببینم روزه ابرار را. همچون آن اصحاب کف، از باغ جود، میچرم ایقاز نی بل رقود. خفته باشم بر یمین یا بر یسار بر نگردم جز چگو بی اختیار. هم به تقلیب تو تا ذات الیمین یا سوی ذات الشمال ای رب بدین. صد هزاران سال بودم در متار همچو ذرات هوا بی اختیار گر فراموشم شده است آن وقت و حال یادگارم هست در خواب ارتحال میرهم رهم زین چار میخه چار شاخ می جهم در مسرح جان زین مناخ شیر آن ایام مازی خود میچشم از دایه خواب ای سمد جمله عالم زختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود تا دم از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زمر بر خود می جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ است می گریزند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شغل ای محتدی نفس را زان نیستی با می کشی زان که بی فرمان شدندر بی حوشی لیس للجنه ولا للانس ان تنفزو من حبس اقتار زمان لا نفوز الا بسلطان الهدا من تجاویف السماوات الالا لا هدا الا به سلطان یقا من حراس شهب روح المتقا هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا چیست مراج فلک این نیستی؟ آشقان را مذهب و دین نیستی پوستین و چارق آمد از نیاز در طریق عشق مهراب عیاز گرچه او خودشاه را محبوب بود ظاهر و باطن لطیف و خوب بود گشته به کبر و ریا و کینه ای. حسن سلطان را رخش آینه ای. چون که از هستی خود او دور شد منتحای کار او محمود بود. زن قوی تر بود تمکین ایاز که خوف کبر کردی احتراز. او محذب گشته بود و آمده کبر را و نفس را گردن زده. یا په تعلیم می کرد آن هیال یا برای حکمت دور از وجل یا که دید چارقش زن شد پسند که از نصیم نیستی هستیست بند تا گشاید دخمکان بر نیستیست تا بیابد آن نسیم ایشو زیست ملک و مال و اطلس این مرحله هست بر جان سبکرو سلسله سلسله زرین بدید و غره گشت ماند در سوراخ چاه جان زدشت، صورتش جنت معنا دوزخه افعی پرزهر و نقشش گلرخه گرچه مؤمن را سقر ندهد زرر لیک هم بهتر بود زانجا گذر گرچه دوزخ دور دارد زو نکال، لیک جنت به ورا فی کل حال. الحزر ای ناقصان زینگل روخه که بگاه صحبت آمد دوزخه.